سوره الرحمن آیه 27 و 28 فیبغا وجه ربک زل جلال ول اکرام تبارک اسم ربک زل جلال اکرام در اونجا کل من علیها فان و یبغا وجه ربک زل جلال و اکرام تبارک اسم ربک همه فانی هم اونی که ربی که زل جلال و اکرام است باقیه، اینجا زل جلال و رو به کار برد. در آیه 28 تبارک است مربکه، مبارک است، پربرکت است، اسم پروردگار تو زل جلال و اکرام، که دارای جلال و اکرامه. خب، تفسیر علی بن ابراهیم قمی از امام باقر علیه الصلاه و السلام، تفسیر امام رو بگم. بعد به اندازه فهم خودمونی مختصری توضیح بدیم تفسیر علیه ابن ابراهیم قمی امام باغر علیه السلام در زیل این آیات شریفه تبارک اسم به کزل جلال و الاکرام نحنو جلال الله و او، التی اکرام الله تبارک و تعالی العباد به طاعتنا و محبتنا یعنی چی؟ اول حدیثشو خوندم که ببینید ریشه حدیثی داره حالا تحلیلشو دقت بفرمایید خداون اون استعدادهایی که در وجود ما قرار داده اگر در مسیر صحیح تربیت قرار بگیریم به مرحله فعلیت میرسه آشکار میشه اگر نحوه بروزش را ندانیم خفه میشه دفن میشه بروز پیدا نمیکنه. یکی از صفات ارزنده ای که خدا برای خودش ذکر میکنه که ابتدای آغاز به پیغمبر مطرح میکنه مقام کرامت الله کرامت الهی اقره بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقره و ربکل اکرم داره به عنوان یک ارزش مطرح میکنه در انجام زل جلال والاکرام همه بزرگان در علم تفسیر و کلام وقتی به این آیات رسیدن میگن جلال صفت جلالی پروردگار است کرام صفت رحمت و جمالی پروردگار است خدا صفت جلال داره و صفت جمال داره خدایی که هم جلال داره هم جمال داره اینها رو در کرامتش که کرم نابنی آدم مطرح کرده میگه این و تو داری که اگر در راه تکاملش قرار گرفتی بشی یک انسان با کرامت